دوستان خوبم وقتی که کلاس دیگه از دانشکده کوچک کتاب مقدس رو شروع کنیم. برای ما مایه خوش که شما تصمیم گرفتی در مطالعه کلام خدا وقت بذارید و با ما همراه باشین. آیا تا حالا چیزی ساختیم؟ ما ساختمان معبد و حسارهای اورشلیم رو با هم مطالعه می اصول کتاب مقدسی عملی هستن که ما میتونیم از کتاب های ازرا و نحمیا در زندگی خودمون به کار بگیریم. بیاید به معلممون ملحق بشیم. در باب هفتم، متا عیسی به ما گفته که در روز داوری بسیاری نزد او خواهند آمد و زندگیشون ارزیابی خواهد شد. ایسا در این باره این طور میگه این خلاصه زندگی اونها خواهد بود. اونها خواهند گفت آیا به نام تو دیوای اخراج نکردیم؟ آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ بعد او با ارزیابی زندگی اونها با این کلمات پاسخ خواهد داد و اون کلمات اینها خواهند بود. هرگز شما را نشناختم. از من دور شوید. شویده بدکاران. این سخنان عیسی وحشتناک هستند این سخنان به ما هشدار میدن که امکان داره در حالی که فکر میکنیم کارگران فوقلادهی برای کار خدا هستیم همون کلمات به ما هم گفته بشه. الهیدان بزرگ دکتر ای دبلیو توزر گفته که وقتی به آسمان برسیم یکی از چیزهایی که بیش از همه ما رو بهت زده خواهد کرد در که این نقطه خواهد بود که کارهایی که ما فکر می کردیم کار خدا هستند فقط کار جسم بودند در کتاب مقدس کلمه جسم اغلب به معنی طبیعت انسانی بدون کمک خدا هست. چطور انسان ها می چنین فریبی بخورن؟ وقتی ما چیزی رو که بهشون آیات مشابه عهد قدیم گفتیم مطالعه میکنیم کتاب‌های از را و رو جوابی برای اون سوال پیدا میکنیم. در جلسه قبلی این دو کتاب رو بررسی کردیم. این دو کتاب چیزهای مشترک زیادی دارن. چیزی که در اونها مشترک هست موضوع اونهاست. موضوع هر دو کتاب کار خدا هست. کتاب از را به ما اصولی رو نشون میده که باید وقتی که کار خدا توسط انسان انجام میشه به کار گرفته بشه. کتاب نهمیا به ما نموداری از استعداد یک رهبر رو نشون میده که خدا باید پیدا کنه تا در کار خدا که توسط شخص یا گروهی انجام خواهد شد دخالت داشته باشه ما کتاب‌های ازرا و نحمیا رو با هم بررسی می‌کنیم چون که این دو کتاب عهد قدیم مثل دو کتاب دوقلو هستند ما به عناوین مختلف دیدیم که این دو کتاب هایی دارند حالا شروع می‌کنیم به بررسی جداگانه این دو کتاب در جلسه قبلی ما به پنج اصل الگویی نگاه کردیم که باید زمانی که قرار هست کار خدا توسط شخصی انجام بشه به کار گرفته بشه. ما دیدیم که وقتی خدا بخواد توسط مردم کاری رو انجام بده خدا باید محرک اصلی پشت اون کار باشه. دیدیم که خدا محرکه اصلی اون کار هست و همیشه به کسانی که در کار خدا مشارکت دارن هدایت های مشخصی میده. به عنوان سومین اصل اولگو خدا هر چیزی که برای انجام کارش نیاز هست فراهم میکنه. بعد چهمین اصلی رو که دیدیم این بود که خدا نه تنها فراهم میکنه بلکه به حد زیاد و به فراوانی و حتی بیش از اونچه که ما بتونیم فکرش رو بکنیم برامون فراهم میکنه. اگه یک شرکت بزرگ با شکست مواجه بشه دلیلش بیدقتی مدیرانش است. اما اگر کار خدا نتونه از عهده مخارجش بر بیاد اگر خدا فراهم نکرده باشه، رهبران اون کار باید در مقابل خدا سجده کنند. اگر اون کار کار خدا هست، رهبران باید توقع داشته باشند که خدا امکانات لازم رو برای اون کار فراهم کنه. اگر خدا امکانات کار رو فراهم نکرده، اون رهبران باید در مقابل خدا سجده کنند و از او بپرسن که آیا واقعا این کاری که می‌کنند کار خدا هست یا کار مردم؟ پنجمین اصل الگویی برای کار خدا اینه، وقتی که شما تصمیم گرفتید که کار خدا را انجام بدید، قدرت شریر در این دنیا هست که با شما مقابله خواهد کرد چون شما در سدید انجام کار خدا هستید ما تاثیر نیروهای شریر رو در بررسی اصول الگویی در کتاب ازرا خواهیم دید پولس رسول ما رو نصیحت میکنه که حیله های شیطان رو درک کنیم ما نباید حیله های شیطان رو نادیده بگیریم شیطان فریب کاره. او دوست داره که خودش رو جای دیگران قرار بده و مردم رو فریب بده این یکی از روش‌های شیطان برای بازداشتن ما از بهترین نقشه خدا برای زندگیمون هست بزرگترین دشمن بهترین چیزی خوب هست وقتی خدا توسط شما کار میکنه، شما بهترین های خدا رو تجربه می کنید و شیطان این رو دوست نداره چون شیطان بسیار باهوشه او می دونه که نمی شما رو وسوسه کنه که کار خدا رو رها کنید و به دنبال سرقت بانک برید کاری که او میکنه اینه که شما رو وسوسه میکنه که کار دیگه ای بکنید که خوب هست. مثلا اگر خدا میخواد که شما یک خادم پزشک در جایی باشید، اگر این بهترین خدا برای زندگی شما هست، شیطان شما را وسوسه میکنه که فقط یک پزشک خوب باشید. شیطان به وسیله بعضی از دوستان نزدیک و خوبتون با شما صحبت میکنه. اونا میگن که ما همینجا هم به پزشکان خوب نیاز داریم. چرا میخوای به قسمتهای شمالی پاکستان بری و اونجا پزشکی کنی؟ اون مردم از کمک‌های پزشکی تو استفاده می‌کنن و هرگز هم ایمان نمیارند در مرزهای شمالی پاکستان در مسافتی کمتر از دیویس مایل فاصله از روسیه، چین و افغانستان من پزشکانی رو دیدم که چهار نفرشون جراح بودن و بیست و پنج سال بود که در اون منطقه خدا رو خدمت می‌کردن. اونها هرگز یک مسلمان رو هم ندیدند که مسیحی بشه. با این حال، اونها به معالجه مسلمانان و رسیدگی به مشکلات پزشکی اونها ادامه دادند. چون متقاید شده بودند که خدا اونها رو اونجا قرار داده تا کاری رو بکنند که خدا اونها رو برای اون فراخونده. اونها به من گفتند که شریر مرتباً از طریق دوستان و خانواده اونها در نامه ها و در وقت مرخصیشون به اونها همون چیزی رو میگند که الان بهش اشاره کردیم. ما به جراحان خوبی نیاز داریم که اینجا کار بکنند. چرا نمیایید همینجا کار بکنیم؟ میخوام که به بررسی اصول الگویی در کتاب از را ادامه بدیم در جایی که قرار هست کار خدا توسط مردم انجام بشه ششمین اصل الگویی که در کتاب از را برای ما به تصویر کشیده شده تقریبا خیلی مربوط به اصلی که الان بررسی کردیم. همیشه وقتی در صدد انجام کار خدا هستید در انتظار مخالفت ها هم باشید گاهی وقتی مردم تصمیم میگیرند که کار خدا را انجام بدن به محض اینکه با مخالفتها مواجه میشن از خودشون میپرسن آیا من علامت رو دریافت نکردم؟ آیا به مسیر درست نیومدم؟ مشکل چیه؟ این سوالات نشون میدن که ما انتظار داریم نباید هیچ مخالفتی درباره انجام کار خدا مشاهده کنیم این حقیقت نداره شریر در این دنیا قدرت داره که توسط مردم کار میکنه درست همونطور که نیروهای خوب و قدرت خدا توسط مردم کار میکنند خدا توسط مردم کار میکنه و شیطان هم توسط مردم کار میکنه از اونجایی که شیطان مخالف هر کاری هست که عیسی مسیح میکنه ما باید وقتی عیسی مسیح توسط ما کار میکنه در انتظار مخالفت ها هم باشیم گاهی کسانی که با شما مخالفت میکنن نمیدونند که نمایندگان شیطان هستند وقتی که عیسی به رسولانش گفت که بر صلیب خواهد مرد از آنها پرسید به گفته ی مردم پسر انسان کیست و به نظر شما من کی هستم پتروس پاسخ داد تو مسیح هستی پسر خدای زنده عیسی گفت شمعون میخواهم چیزی به تو بگم این را جسم و خون بر تو آشکار نکرد بلکه پدر من که در آسمان هست این را بر تو آشکار کرده و من کلیسای خودم رو بر این حقیقت که مردی مثل تو گفت بنا خواهم کرد عجب تعریفی من کلیسای خودم رو بر مردی مثل تو که میتونه چنین ای رو تجربه کنه بنا خواهم کرد تقریبا بلا فاصله بعد از این خداوند گفت بزار یه چیز دیگه هم بهت بگم من به اورشلیم خواهم رفت و مسلوب خواهم شد پتروس او رو به کناری کشید و سرزنش سرزنشکنان گفت دور از تو سرورم، مباد که چنین چیزی بر تو واقع شود پتروس عملا با عیسی مخالفت کرد بعد خداوند این چیز حیرت انگیز رو به پتروس گفت او حتی او رو پتروس خطاب نکرد به او گفت از من دور ای شیطان تو مانع راه منی زیرا افکار تو انسانی است نه الهی تو داری مثل مردی صحبت میکنی که در کنترل شیطان هست نه در کنترل خداوند و میبینیم که همزمان عیسی به پتروس عملا میگه خدا توسط تو کار میکنه و به او میگه شیطان هم توسط تو کار میکنه. ما میتونیم باستا به چنین ظرفیت ترسناکی باشیم اگر شیطان میتونه از پتروس استفاده کنه آیا فکر میکنید شیطان نمیتونه از من و شما استفاده کنه وقتی تصمیم میگیرید که کار خدا را انجام بدید مخالفت ها بلافاصله شروع میشن و این مخالفت ها از طریق مردم ظاهر میشن از یک شبان قدیمی شنیدم که میگفت هر کاری که من برای پادشاهی خدا انجام دادم مجبور بودم که هیئتی رو با خودم همراه داشته باشم منظورش این بوده که او همیشه مجبور بوده که تایید خادمین کلیسا رو داشته باشه وقتی که شما 48 خادم دارید و مجبورید که اونها رو با خودتون همراه کنید این میتونه انجام کار خدا رو مشکل کنه حتی اگر اونها افراد روحانی باشند، شیطان از طریق اونها کار میکنه و برای شما یک مشکل و مخالفت جدی برای انجام کار خدا در خدمتتون درست میکنه. وقتی شما با مخالفت مواجه میشید، اون به این معنی نیست که کار خدا نمیتونه انجام بشه یا کاری که شما میکنید کار خدا نیست. در انتظار مخالفت ها باشید. کتاب از را به ما میگه که این مخالفت ها در دو بود و یا از دو مسیر میان. اول شما میتونید توقع داشته باشید که مخالفت های آشکاری از بیرون خواهید داشت. بعد مخالفت هایی از درون خواهید داشت. شما این رو میتونید در نوشته های پولس ببینید. پولس رسول یقینا وسیله ای برای انجام کار خدا بود که احتمالا افراد نادری از این قبیل خواهند بود. وقتی که برای قرنتیان درباره فرصت بشارت به آسیا می نویسه، او اینطور طور می نویسه: دری بزرگ و موثر برای من باز شده و دشمنان زیادی وجود دارند. وقتی در بزرگی باز میشه و فرصتهای العاده ای پیش میاد، دشمنان هم خیلی بزرگ هستند. ما باید در انتظار این باشیم. اینها حقیقتا بر این هست که کاری که ما میکنیم کار خدا هست. در مکاشفه این آیه رو داریم. من دری گشوده در مقابل تو قرار دادم و هیچکس نمیتواند آن را ببندد. این وعده بزرگیه. بسیاری از مردم با تکیه بر این وعده به دنبال انجام کار خدا رفتند. خدا در مقابل من دری شده و هیچ کس نمیتونه اون رو ببنده. از یک واعظ روستایی پیش شنیدم که این آیه رو نقل می کرد. بعدو گفت: اما این به این معنی نیست که اونها سعی نخواهند کرد. وقتی که شما سعی می کنید از اون دره باز عبور کنید، شما را به قصد کشت کتک خواهند زد. تمامی نیروهای جهنم سعی خواهند کرد شما رو نابود کنن و مانع عبور شما از اون دره باز بشن اما نخواهند تونست اون در رو ببندن. وقتی که شما از اون در عبور می کنید باید در انتظار این باشید که اونها سعی کنند به حد مرگ شما رو کتک بزنند. همیشه کسانی بر روی زمین خواهند بود که وقتی شما به دنبال انجام کار خدا هستید برای شما آرزوی موفقیت نخواهند کرد. در سرتاسر تاریخ اکثر کلیساها کسانی که ادعای مسیحیت کردند مورد جفا واقع شدند زندانی شدند شکنجه شدند و محکوم به مرگ شدند بسیاری از مسیحیان از هشتمین خوشا استقبال چندانی نمی‌کنند خوشا به آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند ما وقتی اینجا کار خدا را انجام می‌دهیم باید توقع مخالفت هم داشته باشیم مخالفت ها را از درون و از بیرون خواهیم دید کتاب از را به ما میگه که وقتی اسرا به با شلین بازگشتند تا معبد رو تعمیر کنن، اهالی محل سعی کردن، اونها رو دلسرد سرد کنن و بترسونن. اونها پیغامهایی برای کوروش پادشاه فرستادند که پر از دروغ بود. وقتی که یهودیان به ساختن ادامه دادند، کتاب از را میگه که دشمنان اونها اونها رو مسخره کردند. اونها یهودیان رو دست انداختن، بهشون خندیدن و گفتند این یهودیان ضعیف چه میکنن؟ آیا شهر را برای خود مستکم خواهند ساخت و قربانی خواهند گذرانید و در یک روز کار را به انجام خواهند رسانید و سنگ ها از توده های خاک روبه خواهند ساخت حالان که سوخته شده است، دشمنان آنها اونها را مسخره می کنند و آنها را تبعید می کنند. از عملا این مخالفت ها را تجربه نکرده. او بعدها اومد در بازگشت دوم که به رهبری ازرا بود. سالها بعد وقتی او وارد صحنه شد، مخالفت ها آنچنان شدید شده بود که، بنایان مجبور بودند نیروهای محافظ در اطراف معبد جای بدن. کتاب نهمیا میگه که وقتی اونها دیوار رو بنامی کردند ماله ها رو در یک دست و شمشیرها رو در دست دیگر داشتند این اسرای آزاد شده عملاً باید در هنگام انجام کار خدا می جنگیدن. این شرحی از مخالفت های بیرونی هست. به لحاظی مقابله با مخالفت هایی که از بیرون هستن خیلی آسون تر هست. چون که اون مخالفت‌ها آشکار هست و ما نمیتونیم این را از دشمنانمون توقع نداشته باشیم اون جایی که شما میتونید اون رو ببینید شما میتونید راهکاری تنظیم کنید که با نقشه جنگ اونها مقابله کنید دومین فرم مخالفت‌ها مخالفت‌های داخلی هست وقتی که اسرا بازگشتن تا معبد رو تعمیر کنن وقتی که غیر یهودیان اون موقع در اورشلیم و یهودیه زندگی می‌کردند نزد رهبرانی مثل زربابل که فرماندار بود و یشوع کاهن رفتن که رهبران اولین گروه از اسرای آزاد شده بودند این مردم غیر یهودی گفتند ما هم همراه شما بنا خواهیم کرد. زیرا که ما مثل شما از زمان اسرهدون پادشاه آشور که ما را به اینجا آورد خدای شما را میطلبیم و برای او قربانی می گذرانیم. این قوم غیر یهود توسط پادشاه آشور مغلوب شده و به سرزمین اسرائیل تبعید شده بودند وقتی که بابلی ها بر یهودیان غلبه کردند، یهودیان از اسرائیل به بابل برده شدند. این یک تدبیر عمومی بود برای اقوام جنگجو تا قوم مغلوب این امتیاز رو نداشته باشند که زمین جدید را مانند فاتحان بشناسند. و بابل و یشو گفتند نه nah, شما را با ما در بنا کردن خانه خدا کاری نیست. بلکه ما تنها آن را برای یهوه خدای اسرائیل چنان که کوروش پادشاه سلطان فارس به ما امر فرموده است آن را بنا خواهیم نمود. زروبابل و یشو یک اصل الگویی در مورد کار خدا برقرار کردند. قوم خدا باید کار خدا را انجام بدهند. بذارید چیزی رو تکرار کنم. این رو دوباره تکرار می کنم چون که شاید بار اول اون رو متوجه نشده باشید. این نقشه خداست که قدرت خدا رو در قوم خدا به کار بگیره که منظور خدا رو بر اساس نقشه خدا انجام بده. باز هم تکرار می کنم. این نقشه خداست که قدرت خدا رو در قوم خدا به کار بگیره که منظور خدا رو بر اساس نقشه خدا انجام بده این یکی از اصول الگویی هست که باید کار خدا رو هدایت کنه وقتی اون جمله رو درک بکنید میتونید به این نتیجه برسید که غیر ایمانداران هیچ سهمی در انجام کار خدا ندارن. یک بار در کتاب اعمال میبینیم که پتروس کار خدا رو در بشارت دادن فیلیپس شرح میده در اون جلسه بشارت حتی شمعون نیز ایمان آورد و پس از تعمید همیشه فیلیپس را همراهی میکرد و از دیدن آیات و موجزات عظیم غرق در حیرت بود. چون شمعون دید که با دست گذاشتن رسولان بر مردم روح القدس به اونها عطا میشه، مبلغی پول نزد رسولان آورد و به اونها گفت این را بگیرید و به من نیز اقتدار بدهید تا بر هر که دست بگذارم روح القدس را پیدا کند. او عملا میخواست که قدرت روح القدس را با پول بخره. پتروس به او گفت زرت با خودت نابود باد. در زبان یونانی چیزی که پتروس گفت عملا این بود پولت و خودت برید به جهنم این چیزی بود که عملا پتروس به شمعون جادوگر گفت بعد پتروس به او گفت پنداشتی های خدا را میتوانی با پول خرید تو در این خدمت هیچ سهم و قسمتی نداری زیرا دلت در حضور خدا راست نیست از این شرارت خود توبه کن و از خداوند بخواه تا شاید این اندیشه دلت آمرزیده شود پتروس همون چیز رو به شمعون جادوگر میگفت که زروبابل و یشو به قوم غیر یهودی میگفتند وقتی که اونها میخواستن در کار بازسازی معبد خدا کمک کنن پتروس به شمعون میگفت تو در این خدمت سهمی نداری چون که کار خدا باید توسط قوم خدا انجام بشه اگرچه تو اعتراف ایمان کردی با این حال هیچ نقشی در این کار نداری دوست من زندگی خودتون رو امتحان کنید. آیا شما جزی از قوم خدا هستید؟ آیا قدرت خدا رو در زندگیتون حس می کنید؟ شما میتونید خدا می خواد با شما رابطه داشته باشه. کار درست خدا توسط ایمانداران حقیقی و پیروان مسیح پیش میره غیر ایمانداران هیچ سهمی در کار حقیقی خدا ندارند. به این دلیل که کلیساهای امروزی انقدر ضعیف هستند. به اعتقاد من یکی از ضعف‌های کلیساهای امروزی اینه که در واقع کلیساهای امروزی آمیزهای از افراد مختلف هست. در تجزیه و تحلیل نهایی تقریباً غیر ممکنه که یک دست داشته باشیم. عیسی این رو در مسئله گندم و علف سمی یا کرکاس به تصویر کشیده. در این مثل این سوال پرسیده شده آیا می‌خواهی که علف‌های سمی باغچه رو بکنیم و جواب اومده که نه. چونکه شما تا زمان خرمن نمیتونید فرق بین گندم و کرکاس رو بدونید. علف کرکاس خیلی شبیه ساقه گندم هست. عیسی گفته بذارید هر دو با هم رشد کنن و یک روز من اونها رو جدا خواهم کرد. ما باید توقع داشته باشیم که در کلیساهای ما همه جور آدم حضور داشته باشند. اما اینجا یک اصل الگویی در رابطه با کار خدا هست که توضیح میده چرا کلیساهای امروزی ما این همه ضعیف هستند. در بسیاری از کلیساهای امروزی هیچ تلاشی برای غربال کردن اعضا نمیشه. بسیاری از کلیساهایی که امروزه در جوامع تأسیس میشن و میخوان که رهبرانی استخدام کنن، کسانی را انتخاب میکنن که دارای اعتبار، پولدار و معروف هستند. اونها میخوان چنین اشخاصی رهبران کلیساشون باشن، خواه ایماندار باشن یا نباشن. کلیساها با ندیده گرفتن نظر مشایخ کلیسا برای پذیرش افراد های بزرگی را از دست می‌دند وقتی مردم می‌خوان به کلیسا ملحق بشن از اونها سوال نمی‌کنن که آیا واقعا به عیسی مسیح ایمان دارید آیا ایمان دارید که عیسی مسیح ناجی تو هست و آیا عیسی مسیح را به عنوان خداوند خود پذیرفتی ما اصلی رو اینجا در کتاب از را بررسی کردیم که کار خدا باید توسط قوم خدا انجام بشه و نه توسط کسانی که می‌خوان سهمی در انجام کار خدا داشته باشن صرف نظر از اینکه اون شخص شغل خوبی داره یا از نظر سیاسی موقعیت خوبی داره یا نه شخصی رو تصور کنید که در کاری مشغول هست که لازمه شناخت افراد زیادی هست مثلا یک پزشک اطفال رو در نظر بگیرید که ایماندار به مسیح نیست اما او لازمه که خانواده ای رو به همراه فرزندانش ملاقات کنه او شاید بخواد که مدیر یک مدرسه یک یکشنبه در یک کلیسای بزرگ باشه چون که میخوادین خانواده ها رو ملاقات کنه، این میتونه راحت ترین کار توی دنیا باشه، چون که بیشتر کلیساها شاید از داشتن اون خیلی لذت ببرن. این میتونه مقایر اصل الگویی که در مورد کار خدا گفتیم باشه. از را در کتاب خودش این اصل الگویی رو با ما در میون گذاشته. یادتون هست که ایسا به کسانی که اقرار میکنن کارهای فعال انجام دادن چی میگه؟ اونها میگه من شما شمار نمیشنازم. شما هیچ سهمی در من و در کار من ندارید اصل الگویی هفتمینه است. خدایی که محرک اصلی و راهنمای اصلی و فراهم کننده کار خودش هست بر هر مخالفتی در کار خودش غلبه خواهد کرد. این وعده زیبا و اصل الگویی خادمین خداوند را که در سراسر دنیا با وفاداری سرگرم نبرد برای کار خدا هستند، تشویق میکنه و به اونها جسارت میده. به عنوان یک خادم خداوند، من این اصل رو با تمام قلبم باور میکنم. بر اساس تجربیات هم ایمان دارم که وقتی خدا محرک اصلی کار هست و هدایت روشنی برای کار خودش به ما میده تمامی وسایل مورد نیازش رو تامین میکنه کنه که کارش انجام بشه. با فیض خدا من تحقق این اصل الگویی رو بارها و بارها در زندگی و خدمت خودم تجربه کردم. همینطور ایمان دارم که همون خدای از را و نحمیا که قادر بود بر مخالفت های کار خودش قلب کنه امروز هم میتونه مانند ایام نحمیا و ازرا کار کنه معجزه خدا برای غلبه بر مخالفت ها با کار خودش در ازرا باب 6 آیات 6 تا 8 به تصویر کشیده شده پیغامی برای امپراتور کوروش فرستاده شده و به او گفته شده قوم یهود قومی سرکش هستند و به کوروش توصیه کردند که بهتر اجازه نده این یهودیان سرکش معبدشون رو تعمیر کنند مخالفان دروغ بسیاری گفتند و یهودیان رو بدنام کردند تا مدتی کار بازسازی ممنوع شد اما وقتی داریوش فرمان داد اسناد تاریخی رو بررسی کنند متوجه شدند که در واقع کوروش فرمانی صادر کرده و مصالح تعمیر معبد را هم تامین کرده بنابراین پاسخ برای پیغام بود مزاحم کار مرمت این معبد نشوید بذارید معبد تعمیر بشه به اون مردم آزاری نرسونید و فرمانی از من صادر شده است که شما با این مشایخ یهود به جهت بنا نمودن خانه خدا چگونه رفتار نمایید؟ از مال خاص پادشاه یعنی از مالیات معورای نهر بلافاصله فاصله هزینه این کار پرداخت شود. میبینید خدا چطور بر مخالفت قلبه میکنه؟ این یک اصل الگویی دیگر برای انجام کار خدا هست که در کتاب از رابط به تصویر کشیده شده. یک اصل الگویی دیگر در کتاب از اینه. در حالی که خدا کارش رو توسط قومش انجام میده نازران غیر ایماندار وقتی انجام کار خدا رو می بینن، نجات پیدا می کنن. یک بار دیدم که در مقابل خانه یک پیرزن خداشناس بر روی پلاکارد این کلمات نوشته شده. کار خدا رو ببین. عجب فکر زیبایی. آیا تا به حال کار خدا رو تماشا کردید؟ آیا تا حالا کار خدا رو دیدید که مشخص بوده کار خداست و هیچ نام دیگری غیر از کار خدا نمی بر اون گذاشت؟ وقتی مردم می‌بینند کار خدا توسط ما که ظرفهای گلی بیش نیستیم انجام میشه اون موقع میفهمند که این کار خداست به این ترتیب مشاهده کار خدا مردم رو نجات میده در عزرا 21 و 22 می‌بینیم که برخی از اشخاصی که کافر بودند تغییر کردند و از رفتار زشت خودشون بازگشتند و به یهودا پیوستند و با اونها در پرستش خداوند و شرکت در مراسم فسح مشارکت کردند این با چیزی که در اصل قبلی دیدیم فرق می کنه که غیر ایمانداران اومدن و گفتن ما میخواهیم در کار خداوند مشارکت کنیم. ما میخواهیم مسئول کلیسا باشیم. این غیر قابل قبوله. وقتی که ملت غیر یهود نجات پیدا کردند، وقتی چیزی رو تجربه کردند که عهد جدید بهش تولد تازه میگه حالا دیگه اونها قوم خدا هستند. اونها تبدیل به افرادی شدند که خدا می خواد توسط اونها کارش را انجام بده. حاله به اصل نهوم میرسیم. همه اونهایی که دستن در کار رهبری در کار خدا هستند میدونن که کار خدا در کلام خدا آشکار شده. اینجا از را ای برای ما هست. از را قلبن تصمیم گرفته بود که کلام خدا رو مطالعه کنه. از کلام خدا اطاعت کنه و داوری ها و قوانینی رو که در کلام خدا آشکار شده به اسرائیلی ها هم تعلیم بده. همینطور که در جلسه قبلی شخصیت ازرا رو بررسی کردیم، فهمیدیم که ازرا یکی از زیباترین نمونه های مردان خدا در کتاب مقدس هست. ازرا از نسل مردی به نام هلقیا بود که تومارهای کتاب مقدس را در زمان پادشاه یوشیا در معبد پیدا کرد. کشف هلقیا بیداری عظیم و علاقمندی زیادی را برای کلام خدا به دنبال داشت. زندگی و خدمت ازرا تداوم این بیداری و علاقمندی به کلام خدا بود. از را نمیتونست به عنوان یک کاهن انجام وظیفه کنه چون که قوم خدا در اسارت بودن به جای اینکه تسلیم بشه و بگه حالا که من اسیرم و نمیتونم کاهن بشم تسلیم شرایط میشم و کاری نمیکنم را خودش رو وقت به مطالعه کلام خدا کرد و به این ترتیب خودش رو آماده کرد از را یک سوم عمر خودش رو صرف آماده کردن خودش نمود و یک سوم دیگر عمر خودش رو صرف اطاعت از کلام خدا نمود و در سومین قسمت از زندگیش او تبدیل به معلم بزرگ کتاب خدا شد. حالا ازرا می دونست که کار خدا چی بود. چون که ازرا کلام خدا رو میدونست. یادتونه که معموریت اولین گروه از اوسرایی که بازگشتند مرمت معبد خدا بود. بعد از اینکه اون معموریت به انجام رسید خدا خواست که در اون معبد خدمت موثر تعلیم را هم برقرار کنه. به این دلیل بود که ازرا با تمامی کاتبانش و با تمامی کاهنان بازگشت تا در اون معبد مشغول تعلیم بشند بعد نهمیا سومین گروه اوسرا رو در بازگشت رهبری کرد تا حصار شهر رو برا کنند و کار خدا رو در حفاظت از قوم خدا در مقابل مخالفت ها و دشمنی ها به انجام برسونم اما میخوام بر این واقعیت تأکید کنم که از به کار خدا پی برد چون که او در کلام خدا بسیار تعمق کرده بود امروز خیلی هستن که خاندگی بزرگی از خدا رو دریافت کردند که کار بزرگی برای خدا بکنند و خاندگی اونها به دلیل درک اونها از کلام خدا هست. مثال امروزی برای کار خدا مردی به نام کامرون تانسنت هست که جنبش عظیمی رو برای ترجمه کتاب مقدس به انداخت. این فکر از اونجا ناشی شد که روزی او در هنگام مطالعه کتاب مکاشفه باب پنج آیه 9 به اونجا رسید که میگفت در مقابل تخت خدا سرودی می سرودند که می گفت تو زب شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. به نظر می رسید که روح القدس در گوش آقای کامرون تانسند نجوا کرد و از او پرسید این آدم ها چطور به اونجا خواهند رسید. مشخص بود که اونها باید انجیل رو به زبان خودشون بشنوند. اونها باید کسی رو در این دنیا ملاقات کنند که کلام خدا رو به زبان خود اونها به اونها بشارت بده بسیاری از اونها حتی زبان مکتوبی ندارند چه برسد به کلام مکتوب خدا؟ و کامرون رویای انجام این کار رو گرفت او این بار رو حس کرد که باید برای تمامی افراد این دنیا زبان مکتوبی وجود داشته باشه و به اونها آموزش داده بشه که اون زبان رو بخونن و کلام خدا به اون زبان ترجمه بشه کار بزرگی در سرتاسر سر دنیا انجام شده. وقتی که خدا کلام خودش رو به کار گرفت تا با قلب کامرون صحبت کنه، اون کار بزرگ خدا در کلام خدا شکل گرفت. یازدهمین همین اصل الگویی که در کلام خدا اومده، واقعی ترین اونهاست. ما قانونی رو برای انجام کار خدا در کتاب از میبینیم بینیم. ما این قانونی رو که برای انجام کار خدا در کتاب از را می بینیم، برای امروز هم صدق می کنه. و توسط سوابق کلیسا به تصویر کشیده شده. وقتی که کار خدا تکمیل میشه، خدا اجازه میده که تشکیلات انسانی شکست بخورند تا برای همه معلوم بشه که برتری قدرتی که در این کار بود از جانب انسان نبوده، از جانب خدا بود، نه انسان. شما این رو از هر دو کاتب، از راو و نهمیا متوجه خواهید شد. وقتی که کار بزرگ خدا انجام شد، مردم سقوط کردند. قوم خدا گرفتار عادت وحشتناک که مردم بدپرست ساکن آن منطقه شدند، تقریبا در هر دو کتاب در یک جا می خونید که کتاب های و نهمیا سقوط و انحطاط اخلاقی قوم رو شهر میدن. شاید بپرسید چرا این اتفاق افتاد؟ به نظر میرسه این پدیده اصلی الگویی دیگر هست که اغلب وقتی کار خدا توسط انسان انجام میشه به چش میخوره. البته خدا رو شد که همیشه اینطور نیست؟ البته غالباً وقتی کار عظیم خدا توسط انسان انجام میشه این پدیده به چشم میخوره مثل داوود و شمشون و دیگر مردان بزرگ خدا مثل موسا به نظر میرسه که وقتی کار خدا تموم میشه سقوط میکنند به موسا اجازه داده نشد که وارد سرزمین وعده بشه. این الگوی غمنگیزی از سلیمان در زندگی بسیاری از مردان بزرگ خداست شاید به این دلیل باشه که خدا میخواد به ما نشون بده خدا کسی هست که منبع کار اون نه ظرف ظرفهای گلی خدا اغلب به نظر میرسه که بعد از تکمیل کار خودش اجازه میده که اون ظرفهای گلی سقوط کنند عامل دیگری که سبب میشه این اتفاق بیفته شیطان هست اصل الگویی شماره دوازده برای کار خدا در کتاب از را این هست وقتی که خدا توسط انسانی کار خودش رو بر روی زمین انجام میده شیطان دوست داره که وسیله اون کار رو بی کنه یک بار شنیدم که شبان یک کلیسای بزرگ در کنفرانسی برای شبانان میگفت وقتی که روح القدس از شما استفاده کرده در مورد معاشرت کردن با مردم خیلی دقت کنید چون که اغلب شما میتونید فاصله بعد از موعظه‌ای بزرگ کرده اید حرف‌های بیمانی بزنید هفته ها بعد از اینکه این مطلب رو شنیده بودم معتقد شدم که خداوند اون روز برای من پیغامی بزرگ داشت وقتی که جلسه کلیسا به پایان رسید و من در مقابل در با مردمی که از کلیسا خارج می‌شدند دست میدادم، با زوج جوانی احوالپرسی کردم زن به نظر می رسید که نه ماه حامله بود به او نگاه کردم و تصمیم گرفتم ازش بپرسم آیا شما تازه به این شهر اومدید؟ چون که اکثر کسانی که به کلیسا می آمدن به تازگی به شهر ما آمده بودند به او نگاه کردم و در حالی که با او دست میدادم گفتم صبح بخیر آیا شما ازدواج کردید اون زن خیلی جا خورد و بعد از اون دیگه هرگز اون زوج رو ندیدم با خودم فکر کردم که حقیقتاً باید کاری رو که اون شبانه پیر گفت انجام می دادم. بعد از این که روح القدس شما رو به کار میگیره بهتره به جای اینکه بخواید معاشرت کنید و چیزی واقعا احمقانه بگید برید و به جای خیره بشید و یا هر کار دیگه‌ای به غیر از معاشرت کردن با مردم اینها بعضی از اصول الگویی در مورد انجام کار خدا هستند که ما از کتاب از را یاد میگیریم را این دوازده اصل الگویی رو در سرتاسر سر کتاب شرح میده و بر اونها تاکید میکنه در مجموع چیزی که از را واقعا به ما میگه دقیقا اینه این نقشه خداست که قدرت خدا رو در قوم خدا به کار بگیره که هدف خدا رو بر اساس نقشه خدا به انجام برسونه. آیا شما جز قوم خدا هستید؟ آیا بر این حقیقت واقف هستید که شما وسیله ای در دست خداوندید؟ آیا بر این حقیقت واقف هستید که هدف از قدرت خدا در شما اینه که کار خدا توسط شما و بر اساس نقشه او به انجام برسه؟ دانشجویان عزیز، آیا این یک حقیقت بزرگ کتاب مقدسی نبود؟ خدا مشتاقه که شما رو برای انجام نقشه خودش به کار بگیره. اینم یادتون باشه که اون دوست داره کارهای خارق العاده رو توسط انسانهای معمولی انجام بده. دعای من اینه که درس امروز و هر کدوم از درسهای این دوره از دانشکده کتاب مقدس شما رو در ایمانتون دلگرم کنه. تا برنامه بعدی امیدوارم که شما جسارت و دلگرمی پیروی از نقشه او رو در زندگیتون تجربه کنید.